حالا از وارد فشود، از یکی از موارد حذف ف، و نمطلق آمیش رو جایی که بعد از این بیاد همسین بشه برای جنبه مجزمانی که قبلش بوده شه. مثالش مثل فشود بروید ساب، بعد با من من باده و بعد با این, این جای خیالسی رو تو که داره داره چی؟ اون باید سماییش رو یکی دو تا مثال بیاسیش رو دیگر نداره ایشون داره مواد بیاسی رو حرف پشت سره هم مثالاش رو میگه و باید مثال رو بگیری یاد بگیری. این که یاد بگیرید زمین مسمون احوالت یاد بگیرید این شهرهایی که ماخفت مطمئن نیچه چون رو تو کتاب دیگه با شهر نمیشتن یعنی همین مثال شده نصف سخته چرا از اون شهرهایی هم که ما داریم باشه. یعنی شورای این که اینو تو تواکل صغیانه شورای این که به راه با نه، خاصه تو ببین میشنه. نمی‌گه. خاصه دیگه که اگر قرار بود با هم بیاد میشد تواکل دام صغیانه. رهاکل دام ما اینکه با هم میاد. اون خاصه نشون بده که اگر قرار بود با هم دیاری می‌شد یارا یادت هم کن داد کاش یا سعیان یارا آکندا این بهبود تعلیم است مثل اینکه مثلا فحص کردی می‌گیم زیدون بد داد زیدون بد داد معنیش چی؟ که نیزیدون یعنی استعاره داده داد یه یعنی نفر میگه استعاره ما هست چرا گفتیم؟ میگیم نه زیدون استعاره داده داد چی گفتی؟ میگیم ظاهر میشه ما ظاهرش کردیم که شماها ها ببینیم. این بهبود تعلیم است نه بهبود الاسیه داور زحمت. بسم, الله بسم الله است که یاسن مفقول مواردی که آمل مفرور و مطلب هست بشه فیلش مورد اول رو خوندیم و شد دروسا فهم ما منن بعد و ما فتا توضیح دادیم تقدیراتش هم. مورد دوم لهو علیه الف همین اعترافن لهو علیه الف و در همه خبر مقدم متعلق به عامل مقدر خبر مقدم علیه جار و مجروع متعلق به اون چیزی که لهو برش متعلقه الف و در همه مؤخر مزاف مزاف لام برای نفع لام برای نفع و علا برای زرر این رو دو جداب عوامه یعنی به نفع اوست بر زرر من یعنی به نفع او بر گرده من چی؟ هزار درهم یعنی هزار درهم من به او به درکارم به نفع اوست بر گرده من یه اعتراف هم که معلومه یعنی انسان به یک مطلبی اقرار بود. و بپذیرم اعترافاً یعنی در این مطلب من اعتراف این اعترافاً مفعول مطلق اعترفوی